Thank mm -hmm. you. داستان نهم تدی آقای مکاردل که روی تخت تک نفره دور از روزنه اتاقه که کشتی دراز کشیده بود گفت بچه اگه همین الان از روی اون کیف نیایی پایین چونان روز قشنگی نشونت بدم که هست کنی جدی میگم و با خلقی و با صدایی که بیشتر به ناله میمان تا آه شمد را کتاب تا بالای قوزکش میرسید با پا از روی خود پس زد اینگار ناگهان هر جور رو اندازی برای تن آفتاب سوخته و ظاهران رنجورش تحمل ناپذیر شد. به پشت خوابیده بود. فقط شلوار پیشامه پوشیده بود. سیگار روشنی توی دست راستش بود و احساس ناراحتی میکرد. و از این ناراحتی بیش و کم لذت می برد. بالش و زیر سیگاری روی کف اتاقک میان تخت او و تخت خانم مکاردل قرار داشت. بیان به تنش حرکتی بدهد دست راست لختش را که از آفتاب سوخته کی ارغوانی شده بود دراز کرد و خاکستر سیگارش را رو به میز تختی تکاند و گفت چهوی گرمی یعنی ماه اکتبره اگه ماه اکتبر این باشه پس وای به ماه اوت سرش را دوباره به طرف راست رو به تدی که دنبال درد سر درست کردن بود برگرداند و گفت هنوز ایستادی خیال میکنی برای چی دارم گلوم و پاره میکنم؟ به خاطر خودم که نمیگم بیا پایین از اونجا خواهش میکنم تدیر روی کیف چرمی گلاتسون ظاهرا نوعی ایستاده بود تا از رازنه باز اتاقه که پدر و مادرش بیرون را بهتر ببیند کفش های سفید کتانی بسیار کسیفی بباداشت جوراب نپوشیده بود شلوارک راه راه نخیش هم برایش بلند بود و هم کمرش دست کم یک شماره بزرگ بود در شانه پیراهن آستین کوتاهش که بارها شسته شده بود سوراخی به اندازه یک سکه دیده میشد. کمرمند کمربند مشکی پوست سوسمار قشنگ او به لباسش نمیخورد. مثل پسر بچهی که موهای بلندش با سری نسبتاً بزرگ و گردن نیمانند توی چشم بزند اصلاح سرش به خصوص در پشت گردن دیر شده بود. تدی شنیدی چی گفتم؟ تدی به خلاف بچه های کوچک که گاهی بیش از اندازه یا با بیخیالی سرشان را از روزنه کشتی بیرون می‌کنند زیاد خم نشده بود. هر دو پایش درست روی کیف چرمی گلاتسون قرار داشت. چیزی که بود خودش را کارانه خم نکرده بود و سرش بیشتر به بیرون متمایل بود. اما به خوبی می‌توان صدای پدرش را صدای خیلی استثنایی پدرش را بشنود. آقای مکاردل توی نیویورک بود روزانه دستکم توی سه سریال رادیویی نقش عمده داشت و به جای آدم عامی و اصلی نمایش حرف میزد. صدایش که با خود نمایی بما پرتنین بود در هر لحظه می توانست هر صدایی حتی صدای پسر بچه خورد را از سکه بیندازد معمولا موقع استراحت که کار خسته کنندهش را پشت سرگذاشته بود خوش داشت یا داد بزند یا مانند بازیگران نمایش با صدای آرام و یک نواخت صحبت کند حالا موقعی داد زدم بود تدی، داد آدم در میاری مگه نشدیدی چی گفتم؟ تدی بیان که پاهایش را که با هوشیاری روی کیف چرمی گلتسون گذاشته بود جابجا به جا کند بالا را برگرداند و نگاهی کامل بی و با معنی به پدرش انداخت چشمهایش که میشی بود و به هیچ وجه درشت نبود کم و بیش لوچ بود چشم چپش بیشتر لوچ بود این لوچی آن اندازه نبود که چشمها را از ریخت بیاندازد یا حتی در نگاه اول قابل توجه باشد بلکه میشد به آن اشاره کرد یعنی وقتی آدم مدتی طولانی و با دقت به آنها خیره میشد و پیش خودش میگافت که کاش چشما کمتر مورب بود یا درشت‌تر بود یا رنگ قهوهیش سیرتر بود یا از یکدیگر بیشتر فاصله داشت به صرافت لوچی آنها میافتاد اما آدم پس از مدتی طولانی که به چهرهش خیره میشد میدید که به راستی زیباست. آقای مکاردل گفت همین الان باید از روی کیف بیای پایین. مگه چند بار باید یه حرف زد؟ خانم مکاردل که ظاهران از صبح زود آن روز درد سینوس ناراحتش کرده بود گفت همونجا سر جد عزیزم. چشم های زن باز بود. یعنی کمی باز بود. حتی به اندازه یه سر سوزن هم تکون نخور. به پهلوی راسته راست کشیده بود و صورتش که روی بالش بود، به طرف چپ روبه تدی و روزنه کشتی بود و پشتش به شوهرش بود. تنش را که به احتمال زیاد برهنه بود، تنگ توی شمت پیچیده بود و دستها و همه تنش را تا چانه در آن محصور کرده بود. گفت بالا پایین بپر و چشمایش را بست، کیف بابا رو لحو لورده کن آقای مکاردل آرام و یک نواخت بزنش که پشت به او کرده بود گفت این حرف رو باید با تلا نوشت معدبانه به بچه میگم از کیفی که بیست دو بالاش پول رفته بیاد پایین اون وقت تو در میایی میگی روش بالا و پایین بپره اسم به این کارو چی میذارم؟ خوشمزدگی ها؟ خانوم مکاردل بیان که چشمایش را باز کند گفت اگه این کیف به وزن یه بچه ده ساله رو نداشته باشه، بچه که شش کیلو نسبت به سنش کم بوده وز داره جاش تو اتاق من نیست. آقای مکاردل گفت، میدونی دلم میخواد چیکار کنم؟ دلم میخواد بزنم اون مخ واموندت رو داغون کنم. پس چرا معطلی؟ آقای مکاردل ناگهان آرنجش را سوتمونه تنش کرد. تحصیگارش رو روی شیشه میز پاتختی خاموش کرد. و با کچ خلقی گفت، یکی از همین روزه ها. خانوم مکاردل با بیخیالی گفت، یکی از همین روزای حمله قلبی کشنده میاد زراغت. و بیان دستش را بیرون بیاورد، شمد را تنگتر اطراف تنش پیچید و گفت، یه تشیه جنازه کوچیکو با سلیقه هم میگیریم. اون وقت همه از هم میپرسن، اون خانم جذابی که لباس قرمز پوشید ردیف جلو نشسته داره با ارگزن بش میکنه و دعا میخونه کیه؟ آقای مکاردر که دوباره با بیهاری به پشت راست میکشید گفت یعنی مثلا داری خوشمزدگی میکنی؟